گرامیان درود بر شما قرار به اولین فایل آوایی کتاب فیزیولوژی ایمان نوشته نون فخر گوش کنیم کتابی که به نظرم اومد اولین کتابی باشه که سعی کرده به صورتی جامع رابطه بین شکلگیری ایمان دینی و همینطور طور موندگاری ایمان دینی در ما انسان رو با خصوصیات روانشناختی و فیزیولوژی مغز ما نشون بده معلف برای این کار دست به جمعآوری دهها تحقیق و مطالعه معتبر محققین در دانشگاه های سراسر دنیا زده و همه اونا رو یک جا در کتابش جمع کرده نویسنده سعی کرده نتایج رو به ساده ترین و خلاصه ترین شکل ممکن شهر بده اینکه مؤلف معلف یه همچین اثر نوعی حتی من تا الان شبیهش رو ندیدم یه فارسی زبونه و با توجه به انشای کتابی ایرانیه و از زن یا مرد بودنشم الوطه مطمئن نیستم به من انگیزه داد تا چنین تلاشی رو به هدفی که نبیسنده داشته نزدیک کنم و با صوتی کردن کتاب کمک کنم راحتتر در دست رس فارسی زبونهایی که فرصت خوندنشو ندارن اما فرصت شنیدنشو دارن قرار بگیره. خب عادت نداشتم چنین تلاشای نوعی رو جز به شکل ترجمه ببینم. یعنی معمولا روی کرتای نوه موضوع اول در بیرون از مرزهای ما صورت میگیره بعد ترجمه شدهش در دسترس ما قرار میگیره. وقتی دیدم این بار یه هموطن این کارو کرده سر زوغ اومدم و تصمیم گرفتم به سهم خودم کمکی برای بهرهمندی بقیه از این اثر خلاقانه و پرزحمت انجام بدم همین ابتدا بگم که مطالعه این اثر فارق از اینکه به فیزیولوژی فیزیولوژیک شکلگیری و موندگاری ایمان دینی علاقه داشته باشیم یا نه ما رو با بسیاری از خصوصیات روانی مهم خودمون آشنا میکنه و علت خیلی از تمایلات، تصمیمات و سوگیری های خودمون چه دینی و چه غیر دینی رو برامون آشکار میکنه و به خودشناسی امیختر و بسیار بدرد بخوری از خودمون میرسیم. با شروع کتاب از همون اولین فصل میفهمین منظورم چیه. بریم که با مقدمه آغاز کنیم. یکی از نقاط تمایز بین گونه یعنی ما انسان ها و دیگر حیواناتین است که ما می توانیم ایمان دینی داشته باشیم منظورم از ایمان دینی اعتقاد به وجود موجود یا موجوداتی ماورای جهان محسوس است که بر زندگی ما نظارت و قدرت دخل و تصرف دارند ما شواهدی از وجود ایمان دینی در حیوانات نمی بینیم اثرات و نتایج پدیده ظاهرا ساده ای ایمان دینی آنچنان متعدد و مهم است که می تواند ما را وادار کند به تحقیق در خصوصیات مغز گونه خود بپردازیم تا بفهمیم چه ویژگی هایی در مغز ما منجر به امکان بروز این خصلته متمایز می شوند. و چرا این ویژگی ها در طول تکامل در مغز ما به وجود آمده اند و مانده اند؟ آیا فقط یک خصوصیت منحصر به فرد در مغز ما موجب تحقق ایمان می شود؟ یا ایمان دینی محصول چند خصوصیت مختلف در مغز است؟ آیا استعداد داشتن ایمان یک ویژگی حیاتی اصلی است؟ که بدون آن زندگی فردی یا گروهی انسان ها مختل می شده؟ یا اینکه این استعداد صرفاً آرزه جانبی خصوصیات متعدد دیگری است که البته آن خصوصیات برای ادامه حیات فردی یا برتری گروهی هوموساپینز بر حیوانات و گروه های انسانی دیگر لازم بودند اما در این حال محملی شدهاند، برای شکلگیری ایمان دینی علاوه بر شکل گیری ایمان دینی ماندگاری آن هم خصلتی خاص در انسان هاست حیوانات به هرچه باور داشته باشند در پی کسب تجربیات جدید باورشان عوض می شود اگر یک شامپانزه بیاموزد که با فشار دادن یک دکمه می تواند غذا دریافت کند بعد از اینکه دیگر به او غذا داده نشود و یا با فشار دادن آن دکمه به جای غذا شک الکتریکی دریافت کند به سرعت میآوزد که دیگر بین دکمه و غذا رابطه ای نیست. اما انسان ها به این سادگی دست از ایمانشان بر نمیدارند و شواهد تجربی و دلایل منطقی روی هر عقیده ی آنها که اثر بگذارد، روی ایمان دینیشان چندان موثر نیست آیا همان ویژگی هایی که سبب شکلگیری و پرورش ایمان دینی می شوند به حفظ آن نیست کمک می کنند؟ یا اینکه خصوصیات دیگری در مغز انسان ها باعث حفظ ایمان می شود و آیا اصلا ماندگاری ایمان دینی هم یک خصوصیت اصلی و حیاتی مغز هوموساپینس است؟ یا آن هم آرزه جانبی یک یا چند خصوصیت مهم و حیاتی دیگر گونه ماست؟ آیا در هزاران سال گذشته سماجت در حفظ ایمان به حفظ حیات فردی و گروهی و برتری ما بر حیوانات و گروه های دیگر کمک کرده؟ یا نقطه ضعف ما هموسافینس ها بوده است؟ آیا در زمان حاضر و در شرایط کنونی تمدن انسانی این سماجت در حفظ ایمان مزیتی حیاتی و موجب برتری افراد و گروه‌های انسانی است یا برعکس ایده نوشتن این کتاب چند سال پیش و پس از خواندن کتاب انسان خردمند اثر یوال نو در من شکل گرفت حراری در کتابش نظریه این مطرح می کند. مبنی بر اینکه دین در طول تاریخ با کمک به تشکیل گروه های بزرگتر و متحدتر توانست از نقش مثبتی در توانمند سازی گروه های انسانی بازی کند. گرچه این تئوری به نظر درست می‌آید، اما حراری بیش از این به این مهم نپرداخت. پس از آن تصمیم گرفتم با جمعوری نتایج تحقیقات روانشناسان، عصب روانشناسان، جامعه شناسان و رفتارشناسان که به طور مستقیم جهت تحقیق پیرامون مکانیسم های ایمان دینی انجام شده بود یا به طور غیر مستقیم به آن مربوط می مراحل ایجاد ایمان در گونه هوموساپینس را توضیح دهم و نشان دهم چگونه خصوصیات مغزی و شناختی و روان شناختی ما موجب به وجود آمدن ایمان و تحکیم و ماندگاری آن می‌گردد و اینها چه اثری بر زندگی گذشته و حال گونه ما داشته و دارد. نون فخر زمستان 1400 عنوان از کجا شروع کنیم؟ تجربیات شخصی و مشاهدات ما نشان می‌دهد انسان‌های دارای ایمان دینی ممکن است به دستوراتی که از طرف موجود یا موجودات ماورایی به آنها داده شده عمل کنند یا نکنند مؤمنین ممکن است مناسکی را برای نزدیک شدن به آن موجود یا موجودات ماورایی انجام دهند یا ندهند ممکن است با آنها راز و نیاز کنند یا نکنند ممکن است به موجودی ماورایی عشق ببرزند یا از او بترسند. ممکن است همه امور عالم را در دست او و حاصل دخالت او بدانند و یا ممکن است به قوانین علمی اعتقاد داشته باشند و لزوما او را در هر پدیده دنیوی دخیل و معصر نبینند. ممکن است دعا کنند و خواسته هایشان را از آن موجود یا موجودات ماورایی بخواهند یا به دعا اعتقاد نداشته باشند. ممکن است اشخاص و اشیایی را تحت حمایت و تایید آن موجودات ماورایی فرض کنند و آن اشیا و اشخاص را مقدس بدانند و ممکن است به اشیاء و اشخاص مقدس اعتقادی نداشته باشند. به نظر می‌آید در همه این حالات مختلف یک چیز بین مؤمنین مشترک است و آن اعتقاد به وجود موجود یا موجوداتی ماورایی است موجوداتی که با حواس ظاهری دیده و درک نمی‌شوند. اما شخص مؤمن از وجودشان مطمئن است و تمام اعمال و حالات ذکر شده به هر میزان که انجام شوند و صورت پذیرند حول اعتقاد به وجود همان موجودات ما شدنی می گردند و تحقق می و اگر اعتقاد به آن موجود یا موجودات ما برای فروری زد دیگر اعمال و باورهای مذکور ناموجه و نشدنی خواهند بود و ایمان دینی هم از بین می رود. پس فکر می کنم برای شروع بهتر است حرکت خود را از همین نقطه آغاز کنیم و ببینیم ما بر اساس فیزیولوژی مغز و ویژگیهای های چگونه به وجود یک موجود ماورایی باور پیدا می کنیم. عنوان نظریه ذهن، کودک سیزده ماهی انسان به مادرش نگاه می کند و از جهت نگاه مادرش به این نتیجه می رسد که چیزی توجه مادرش را جلب کرده است پس او هم به همان راستای نگاه مادرش نگاه می کند. در وهله نخواست لازم به نظر نمی رسد این پدیده را مهم تلقی کنید اما راستش را بخواهید این پدیده بسیار مهم است و آنچه باعث آن شده آثار عمده ای در زندگی آینده نوزاد دارد. چگونه کودک سیزده ماهه از نگاه مادرش می فهمد که مادرش دارای ذهن است و اکنون ذهن مادرش متوجه و درگیر چیزی شده که لابد در راستای نگاهش قرار دارد. کودک سیزده ماهه با استدلال منطقی و سقراب و کبراشیدن به این نتیجه نرسیده است. این نیست که کودک پیش خودش گفته باشد بهتر است به دلیل حرکات و رفتارهای مادرم فرض را بر این بگذارم که مادرم دارای ذهنی همانند ذهن خود من است بنابراین اجالتم بهتر است که این ایده را هم منطقی بدانم که لابو ذهن فرضی مادرم متوجه چیزی شده لاجرم عاقلانه است خودم هم به آن سو نگاه کنم شواهد نشان می دهد که کودک انسان پیش دارد حاکی از آنکه مادرش و دیگران دارای ذهن هستند و لذا بیدرنگ به همان نقطه توجه می و اصطلاحاً با مادرش توجه مشترک پیدا می کند. گونه انسان از خورد سالی می تواند نظریه یا فرضیه درباره دیگران داشته باشد مبنی بر اینکه آنها نیز مانند خود او ذهنی دارند که دوچار حالات مختلف می شود، مثلا خوشحال می شود، ناراحت می شود، خشمگین می شود، حیجان زده می شود، توجه می کند، نگران می شود، منظور را متوجه می شود، منظور را متوجه نمی شود، کنجکاف می شود. به این پیشفرز که از خردسالی در ما شکل می گیرد و تکامل می یابد نظریه ی گفته می شود. همین خصوصیت این امکان را به انسان ها می دهد که رفتار دیگران را بر اساس حالات ذهنی آنها درک کرده و نیز پیش بینی کنند. با رشد کودک این توانایی هرچه بیشتر تکامل پیدا می کند آنچنان که در چهار سالگی می تواند معنی عباراتی که حالات ذهنی را بیان می کند بفهمد. معنی عباراتی مثل درد داشتن، فکر کردن، احساس کردن، باور داشتن، ترسیدن بیحسل بودن، دوست داشتن، متنفر بودن، بدون داشتن نظریه ذهن، این حالات قابل فهم نیستند. اگر یک کودک نظریه ذهن نداشته باشد، وقتی مادرش میگوید پدرت از دستتون ناراحت است، معنای این حرف مادرش را نمیفهمد، چرا که برای پدرش ذهنی قائل نیست تا ناراحت بودن آن ذهن را درک کند. سیمون بارانکوهن در سال 1985 در رابطه با نظریه ذهن آزمایشی انجام داد. او در مقابل کودکانی که در این مطالعه شرکت داشتند دو عروسک به نامهای سالی و آن را به نمایش در میآورد. عروسک هایی که توسط عروسک گردان حرکت میکردند. در مقابل آن دو عروسک یک جعبه دربسته و یک سبد که رویش پارچه کشیده شده بود قرار داشت. عروسکی که نامش سالی بود میآمد و یک توپ داخل سبد میگذاشت و دوباره پارچه را روی سبد میانداخت و صحنه را ترک میکرد آنگاه عروسکی که نامش آن بود میآمد و در قیاب سالی توپ را از داخل سبد برمیداشت و داخل جعبه میگذاشت و در جعبه را میبست و از صحنه خارج میشد سپس سالی به صحنه برمیگشت آزمایش کننده از کودک میپرسید ساله ای که الان میخواهد با توپش بازی کند، اول کجا به دنبال توپش خواهد گشت؟ داخل سبد یا داخل جعبه؟ سه گروه کودک مورد آزمایش قرار گرفتند. 27 کودک معمولی که انتظار میرفت نظریه ذهن در آنها به طور طبیعی تکامل یافته باشد، 14 کودک مبتلا به سندروم دان و 20 کودک مبتلا به اوتیسم. در اوتیسم نظریه ذهن به طور طبیعی تکامل نمییابد کودکانی که در پاسخ به سبد اشاره می‌کردند، نظریه ذهن درستی داشتند چون می‌دانستند اگرچه توپ اکنون در جعبه است، اما سالی از این واقعیت باخبر نیست، پس باید داخل سبد دنبال توپش بگردد. آنها می‌دانستند که ذهن سالی باید یک باور غلط در مورد محل توپش داشته باشد چون اطلاعاتی را که بچه ها داشتند ندارد. سالی موقعی جابجایی توپ از سبد به جعبه از صحنه خارج شده بود. پس سالی باورهای خودش را دارد که با باورهای آنها متفاوت است. 85 درصد های عادی درست جواب دادند و به سبد اشاره کردند. 86 درصد های دچار سندرم دان نیز درست جواب دادند و به سبد اشاره کردند. تنها 20 درصد های دچار اوتیسم درست جواب دادند. کودک اوتیستیک خودش میداند توپ در جبه است اما متوجه نیست که سالی ذهنی دارد که در جریان تغییر مکان توپ قرار نگرفته و ناچار نباید بداند که اکنون دیگر توپ در سبد نیست علاوه بر افراد دچار اوتیسم اشخاص مبتلا به اسکیزوفرنی کودکان بیشفعال، کسانی که تحت تأثیر الکل و مواد مخدر هستند و نیز افراد محروم از خواب و همچنین کسانی که تحت فشار شدید فیزیکی و یا عاطفی قرار میگیرند، دچار نقص در نظریه ذهن میشوند. کسانی که تئوری ذهن کاملی ندارند، در درک مقاصد و نیات دیگران نقص دارند و متوجه تأثیر افعال خودشان بر دیگران نمیشوند و تعاملاتشان با افراد جامعه با اشکال همراه است. پیش فرض وجود ذهن در افراد دیگر حتی می تواند به اشیا نیز تعمیم یابد. معمولا کودکان اسباب بازی هایشان به خصوص عروسک ها را دارای ذهن می دانند و تصوراتی از حالات ذهنی مختلف آنها دارند و عمیقا با آنها ارتباط برقرار می کنند. به این ترتیب باید بگوییم کودک نه تنها وجود ذهن در دیگران را به طور منطقی نتیجه نگرفته بلکه به عکس باید با گذشت زمان و با شواهد و منطقیات بگیرد بعضی از اشیایی را که دارای ذهن فرض می کرد، از لیست موجودات دارای ذهن خارج سازد. تئوری ذهن کمک می کند انسان با دیدن عمل دیگران به نیت و قصدی که آنها از انجام آن دارند بیاندیشند و سعی کنند بفهمند در ذهن دیگری چه می که دست به آن عمل زده است. این پدیده میتواند به هر تغییری که در محیط اطراف صورت میپذیرد نیز تسری یابد و شخص به خصوص در کودکی حتی برای طبیعت و پدیده‌های طبیعی مثل دریا، باد، باران، رود و نیز جانداران به شکلی ناخداگاه ذهنی را مفروض بگیرد و به ذهنی که برای این پدیده‌های طبیعی قائل است حالات مختلفی همچون آرامش، خشم، مهربانی کینه، لجبازی، حسادت، خودخواهی، توجه، بیتوجهی و از این قبیل نسبت دهد و به دنبال منظور و نیتی در پشت هر تغییر در طبیعت بگردد دباره کلمن از دانشگاه بوستون که مثل همه ما متوجه شده بود بچه ها از سن سه و 4 سالگی در مورد همه چیز سوال می کنند به تحقیقی دست زد تا روشن کند این سوالات بچه ها با چه پاسخهای ارضا می شود او در مورد هر پدیده ای دو پاسخ در مقابل کودکان قرار می داد و از آنها می پرسید کدام پاسخ از نظر آنها درست است. یک پاسخ علت طبیعی به وجود آمدن آن پدیده را توضیح می داد. پاسخ دوم هدف و قایتی بود که می توانست از به وجود آمدن آن پدیده حاصل شود. مثلا از کودک می پرسید فکر می کنید چرا لبه سنگ های یک صخر تیز است؟ آنگاه دو پاسخ از دو شخص فرضی مطرح میکرد و میگفت یک نفر فکر میکند تکه کوچک سنگ در زمانی طولانی روی هم انباشته شدهاند بنابراین شکل صخره به این صورت درآمده و لبه های تیزی از اطرافش بیرون زده است. اما نفر دوم فکر میکند که سخره ها تیزی دارند تا حیواناتی که تنشان میخارد خودشان را به این لبه های تیز بمالند و خارش بدنشان را برطرف کنند. حالا بگو به نظرت جواب کدام یک درست است؟ اکثر بچه ها جوابی را انتخاب می کردند که هدف و قایت شکل گیری پدیده های طبیعی را بیان نکرد. یعنی پاسخهای قایت نگرانه را درست می دانستند و مثلا در مورد بالا جواب دوم را صحیح می دانستند. من این آزمایش را روی همه سنین مختلف انجام داد و مشاهده کرد بچه ها تا سن 7 یا هشت سالگی پاسخهای قایت نگرانه را درست می دانند. گویی وقتی آنها می پرسند چرا فلان پدیده طبیعی وجود دارد انتظار پاسخ علمی ندارند بلکه می بدانند آن پدیده به چه هدف و منظوری شکل گرفته و طبعا وقتی صحبت از هدف باشد ناچار باید وجود یک آگاهی یا ذهن مفروض گرفته شده باشد که این آگاهی یا ذهن با قصد و نیتی به آن پدیده طبیعی همت گمارده باشد. با افزایش سن و یادگیری علت به وجود آمدن پدیده ها، این نگاه قایت نگرانه به تدریج از بین می رود. دهبورا کلمن میخواست بداند آیا در بزرگسالی از آن نگاه قایت نگرانه و آن پیشفرز وجود یک ذهن در پشت هر پدیده طبیعی چیزی در ما میماند یا نه او همان آزمایش را بروی بزرگسالان هم انجام داد البته آنها پاسخهای علمی را انتخاب میکردند اما وقتی مهلت پاسخگویی را بسیار کوتاه کرد و پاسخ دهندگان را از نظر زمانی تحت فشار قرار داد پاسخ های تعداد پاسخ‌های بزرگ سالان هم افزایش یافت و مثلا در جواب اینکه چرا لایه اوزون وجود دارد این پاسخ که لایه اوزون وجود دارد تا از ما در برابر اشعهی خورشید محافظت کند را انتخاب می‌کردند نظریه ذهن تنها مخصوص انسان‌ها نیست و در بعضی حیوانات هم مشاهده می‌شود اما نه به تکامل یافتگی انسان‌ها مثلا شواهد وجود آن در اسب، شامپانزه و الاغ هم دیده شده است. تکامل یافتگی نظریه ذهن در فیل‌ها و دلفین‌ها قابل توجه است. دانیل پاوینلی از دانشگاه لویزیانا در مطالعاتی بر روی شامپانزه‌ها آنها را در مقابل دو همکار خود قرار میداد. یکی از دو نفر می توانست ببیند و دیگری مثلا به دلیل بسته بودن چشمش با یک پارچه نمی‌توانست ببیند. کسی در مقابل این دو نفر غذایی را قرار میداد. حال شامپانزه ها باید غذا را از کسی که می توانست ببیند طلب می کردند اما شامپانزه ها از آن یکی هم درخواست قضا غذا میکردند آنها متوجه نبودند باورهای آن دو نفر متناسب با اطلاعاتی است که دریافت می کنند و آنکه چشمش بسته است اطلاعاتی دریافت نمی کند و نمیداند غذا کجاست. پاوینلی قبلا یک بار چشم شامپانزه ها را به همان طریق میبست تا بلکه متوجه شوند کسی در آن وضعیت قادر به دیدن نیست. بونوواها نظریه ذهن پیشرفته‌تری دارند و سگ‌ها علارغم اینکه هوش کمتری از شامپانزه ها دارند، دارای تئوری ذهن تکامل یافته‌تری هستند و در درک نیات انسان‌ها تا 2.5 برابر بهتر از شامپانزه ها عمل می‌کنند. حتی سک هایی که در طبیعت بزرگ شده ان نیز همین دارند. وقتی صاحب سگ به یک آدمک و یا یک کتاب توجه می کند، سگ او حساسیتی نشان نمی دهد. اما وقتی به یک سگ عروسکی توجه می کند، سگش های سکش فرق می کند و می خواهد توجه صاحبش را به سمت خود جلب کند. برای درک جهت توجه انسان و حالات ذهنی آنها سفیدی چشم نیز به کمک ما آمده است. انسان موجودی است که سفیدی چشم واضحی دارد. رابطه بین توجه یا نیت انسان ها و چشم آنها در بخش STS مغز پردازش می شود. یعنی سوپریور تیمپورال سلکوس. تا اینجا تحقیقات نشان می دهد در زمان فعالیت های مربوط به نظری ذهن نواهی TPJ تی یا تیمپورو پارشیال جانکشن و MPFC، یا مدیکال پروفرونتال کورتکس و PSTS یا پوستریور Superior تمپورال سولکوس از مغز دوچار افزایش فعالیت می شوند. مثلا در یک تحقیق نشان داده شد که وقتی افراد مورد آزمایش شاهد شخص دیگری بودند که دستش را بالا می برد منطقه PSTS در مغز آنها فعال می شود. اما وقتی به همان شخص نگاه میکردند در حالی که دست او را یک دستگاه بدون اینکه او اراده کند بالا می برد، PSDs و فعالیتی نشان نمیداد. آزمایش شوندگان در حالت اول متوجه عملی همراه با قصد قصدونیت می شوند و فوراً به حالت ذهنی آن شخص توجه می کنند تا بفهمند چرا دستش را بالا میبرد. اما در حالت دوم که دستگاه دست او را بالا می برد، نیازی نیست که به حالت ذهنی دستگاه توجه کنند زیرا به وجود ذهنی برای دستگاه قائل نیستند این قبیل آزمون در کنار مطالعه کسانی که لوب فرونتال و یا تی پی آنها آسیب دیده و در پی آن دشوار نقص در زمینه تئوری ذهن شدهاند رابطه نواحی مختلف مقص و عملکرد نظریه ذهن را هرچه آشکار آشکارتر کرده است گونهٔ ما بدون داشتن نظریه ذهن قادر به درک آنچه در ذهن دیگر اعضای گروه خودش میگذرد و یا آنچه در ذهن اعضای گروه‌های دیگر و حیوانات دیگر میگذرد نبود و چون نسبت به محتوای ذهن موجودات دیگر هیچ فرضیهای نداشت بنابراین از انجام رفتارهای متناسب نیز عاجز بود یعنی مثلا ما نمی‌توانستیم برای فریب دیگر انسانها یا دیگر حیوانات نقشه بکشیم و یا دست به اعمال ریاکارانه بزنیم تا خود را بهتر از آنچه هستیم نشان دهیم و یا راهی برای بلف زدن پیدا کنیم تا خود را قویتر از آنچه هستیم نشان دهیم و یا حتی نسبت به دیگران همدلی و دلسوزی پیدا کنیم و هوس کمک به دیگران به سرمان بزند و رو به اعمال اخلاقی آوریم البته گرچه برای انجام اعمال اخلاقی و دلسوزانه داشتن نظریه ذهن شرط لازم است اما شرط کافی نیست و نیاز به فعال شدن مکانیزم‌های دیگری نیز در مغز میباشد که در بخش‌های بعدی به آنها اشاره خواهیم داشت اما ظاهراً داشتن نظریه ذهن و این پیشفرض طبیعی ما که دیگران ذهنی همچون ذهن خودمان دارند عوارضی برای ما دارد و منجر به خصوصیت منحصر به فردی در گونه ما شده است که به آن میپردازیم عنوان آمادگی برای باور به وجود موجودات ماورایی تا اینجا به نظر می آید قابلیت داشتن نظریه ذهن در حدی که در هوموساپینس وجود دارد آثار متعددی داشته و از جمله موجب شده گونه ما بتواند بهتر با هم نوعانش ارتباط برقرار نماید و دایره لغات وسیع‌تری فراهم نموده و زبان کارآمدتری برای ارتباط پیدا کند زبان ما به کمک رشد و تکامل نواهی مغزی مربوط به تولید گفتار و درک گفتار و حالات چشم، چهره و بدن و نیز به یاری دستگاه صوتی کارآمدتر برای تولید صداهایی متنوعتر تر هرچه بیشتر توسعه پیدا کرد و توانست وسیلهی حیرت انگیز و کارآمد برای انتقال دانش، تجربه، احساسات و باورها به دیگر اعضای گروه گردد اکنون گونه هوموساپینس ابزاری فوقلاده داشت که به کمک آن می توانست نه تنها تجربیات و مشاهدات ساده ای مثل محل قرارگیری چشمه آب یا شکار را به دیگر اعضای گروهش منتقل کند بلکه قادر بود داستانهایی که سینه به سینه نقل شده بود را از گذشتگان به آیندگان انتقال دهد و حتی تصاویر و ماجراهایی که در خواب و رویا دیده بود را به دیگران بگویند. گونه انسان میتوانست تخیلات و توهماتش را نیز به بقیه بگوید. یک انسان میتوانست به دیگری بگوید که مطمئن است موجودی ماورایی یا نامرئی در حال دخالت در طبیعت اطراف و دست بردن در پدیده های پیرامون آنها است. اما گفتن چنین باورهایی یک مسئله است؟ پذیرفته شدن این قبیل باورها از سوی دیگر اعضای گونه یک مسئله دیگر است. چرا اعضای گونه انسان ادعای وجود موجودات ماورایی را از یکدیگر میپذیرند تحقیقاتی برای پاسخ به این سؤال صورت گرفته که نشان میدهد باز هم پای خصلت مهم داشتن نظریه ذهن در میان است جس برینگ روانشناس از دانشگاه اوتاگو در نیوزلند آزمایشی را روی کودکان 6 و 7 ساله تراحی کرد به این ترتیب که از کودکان میخواست در بازی پرتاب توپ چسبی به سمت هدف روی دیوار شرکت کنند تا معلوم شود چه امتیازی میگیرند. او سه قانون سخت گیرانه هم گذاشته بود. اولین که به هیچ وجه نباید برای نزدیک شدن به صفحه هدف از خطی که او در چند متری هدف کشیده بود عبور کنند. دومین که راست دست ها باید با دست چپ و چپ دست ها با دست راست پرتاب کنند. قانون سوم این بود که موقع پرتاب باید پشت به هدف بیستند و توپ چسبی را با پرتاب آن به پشت سرشان به هدف بزنند. در واقع او میخواست آنها با یک روش بسیار دشوار و تقریبا نشدنی امتیاز کسب کنند. سپس هر کودک در اتاق تنها گذاشته می و رفتارش به وسیله دورین تحت نظر قرار می گرفت. همه بچه ها تقلب می کردند. از خط رد میشدند از دست قالب خود استفاده میکردند و رو به هدف توپ را پرتاب می کردند و یا اینکه اصلا جلو میرفتند و توپ را به مرکز هدف می چسبندند. به گروه دوم از کودکان 6 و 7 ساله هم همه این قوانین گفته شد. اما یک چیز دیگر هم به گروه دوم گفته شد و آن اینکه بر روی صندلی کنار اتاق شخصی نامرئی به نام شاهزاده آلیس نشسته. و آنها را نگاه می کند. بعضی از بچه ها وجود شاهزاده آلیس را زیر سوال می بردند و روی صندلی دست میکشیدند تا از نبودن شاهزاده آلیس مطمئن شوند و اظهار می کردند که حضور او را باور نمی کنند. اما وقتی بچه ها در اتاق تنها ماندند تا مسابقه را انجام دهند به ندرت تقلب کردند. حتی بچه هایی که گفته بودند حضور شاهزاده نامرئی نامری را باور نمی کنند. ظاهرا بچهای انسان آماده اند هر داستانی را که بزرگترها به آنها میگویند باور کنند و مورد پذیرش قرار دهند منظور از بزرگترها کسانی هستند که بچه ها آنها را به عنوان فرد داناتر از خود میپذیرند ها فرض را بر دروغگویی افراد ظاهرا داناتر نمیگذارند اگرچه ممکن است گاهی در مقابل اظهارات بزرگترها چون و چرا کنند اما گویا غالبا آن را باور می کنند یا جدی میگیرند در واقع چون و چرا کردن بچه ها در سنین پایین هنوز محصول تفکر نقاد و رشدی یافته نیست و معیارهایی که برای سنجش گفته های استفاده می کنند مثل دست کشیدن روی سندلی شاساده آلیس هنوز برایشان یقیناور محسوب نمی شود. شاید به این دلیل به معیارهای راستی آزمایی خودشان ایمان ندارند و به آنها اتکا می کنند که آن معیارها را فصل الخطاب و فیصل دهنده برای نتیجهگیری گیری نمی دانند و گمان می کنند شاید هنوز چیزی باشد که بزرگترها می دانند و آنها نمی دانند و شاید معیارشان برای قضاوت نهایی کافی نیست. به هر حال کودکان چه در پی رشد شناختی و با دلیل و منطق به این نتیجه برسند که باید حرفهای بزرگترها را باور کنند؟ و چه باور حرف های بزرگترها یکی از ویژگی های ذهنی و روان در آنها باشد این خصوصیتشان در مجموع می تواند به حفظ سلامت و حیات آنها کمک کند اگر پیش فرض ذهنی کودکان انسان این بود که بزرگترهایشان دروغ میگویند مگر اینکه عکس آن ثابت شود به راحتی جان خود را به خطر میانداختند و مزیتی که زبان برای انتقال تجربیات مهم و حیاتی در اختیارشان قرار داده بود تباه می شود. در پی باور داستانها و ادعاهای بزرگترهاست ترهاست که بچه ها از تجربه مجدد کارهای بیهوده، بینتیجه و یا خطرناک بینیاز می شوند و شانس رشد و تولید مثل و انتقال ژن خود به نسل بعد را افزایش می دهند. به علاوه راست و پنداشتن دیگر اعضای گروه و اعتماد به ایشان موجب پیوندهای عاطفی بین آنها می‌گردد. یعنی عدم اعتماد و پیشفرز دروغگو بودن دیگر اعضای خانواده و گروه می موجب کدورت در روابط و فاصله بین اعضا شود. انسان ها با آگاهی از این مسئله حتی گاهی وانمود می کنند حرفای دیگران را باور کردهاند گویی در بین اعضای گونه انسان اعتماد بخشی از اخلاق تلقی می گردد و کسانی که باور پذیری بیشتری دارند و به ویژه داستانهای مورد پذیرش گروه را باور می کنند بیشتر مورد حمایت همعقیده هایشان قرار می و همین امر پیوندها و اتحاد اعضای گروه را موجب می شود به هر حال تا اینجا آزمایش جسبرینگ نشان می که کودکان قابلیت زیادی در باور پیدا کردن به وجود موجودات ماورایی و نامرعی و دارای ذهن دارند. یعنی کودکان انسان به واسطه داشتن نظریه ذهن نه تنها آماده اند برای هر موجود زنده و غیر زنده ای ذهن قائل باشند، بلکه آماده اند وجود ذهن بدون بدن را نیز باور کنند. اما کودکان چه زمانی علاوه بر باور به وجود یک موجود نامرئی در محیط پیرامون میتوانند باور کنند که آن موجود به محتوای ذهن آنها نیز دسترسی دارد و از احساسات و افکار آنها نیز باخبر است جسبرینگ آزمایش دیگری را طراحی کرد که پاسخ به این سوال یکی از نتایج زمنی آن بود او یک توپ را در یکی از دو جعبه روی یک میز در داخل یک اتاق پنهان می‌کرد و از بچه‌ها می‌خواست حدس بزنند توپ در کدام جعبه است همچنین به بچه‌ها می‌گفت شاهزاده آلیس که یک شاهزاده نامرئی است در اتاق حضور دارد و ممکن است قصد کمک به شما را داشته باشد اگر به جعبه اشتباه اشاره کنید، ممکن است پرنسس آلیس به طریقی نامعلوم به شما علامت دهد تا انتخاب خود را عوض کنید. خودتان باید متوجه شوید که پرنسس آلیس به چه روشی به شما علامت می دهد. اگر کودکی دستش را روی جعبه اشتباه که توپی درون آن نبود می گذاشت، آزمایشگران تغییری را در اتاق آزمایش ایجاد می کردن. مثلا چراغ مطالعه گوشه اتاق را با کنترل از راه دور روشن و خاموش می‌کردند. انتظار میرفت کودکان این تغییر را به عنوان علامتی از سوی شاهزاده آلیس که می خواهد به آنها کمک کند، تفسیر کنند و انتخابشان را عوض کنند و جعبه دیگر را نشان دهند. بچه‌های کمتر از هفت سال ارتباطی بین خاموش و روشن شدن چراغ و نیت شاهزاده آلیس پیدا نمی کردند و انتخابشان را تغییر نمی دادند. اما بچه های هفت تا نه ساله و بالاتر بودند که نه تنها به وجود ذهن شاهزاده آلیس باور پیدا می کردند بلکه باور پیدا می کردند که ذهن شاهزاده آلیس با ذهن آنها پیوند و ارتباط دارد و می داند چقدر برایشان مهم است که جعبه درست را پیدا کنند و لذا شاهزاده آلیس با آنها همدلی میکند و مثلاً چراغ را روشن و خاموش میکند پس میشود گفت بین 7 تا 9 سالگی است که هر شخصی که به او اعتماد داریم میتواند اولا در باور ما بنشاند که موجودی ماورایی و نادیدنی وجود دارد ثانیا هر تعریفی را که مایل باشد از آن موجود به ما ارائه دهد می تواند او را دارای قدرت محدود معرفی کند که فقط قادر باشد در وسایل یک اتاق تغییر ایجاد کند یا می تواند او را دارای قدرت تغییر در آب و هوا، دست بردن در زندگی و مرد، افزایش و کاهش روزی و درآمد ایجاد بیماری یا درمان آن و حتی خلق یک جهان کامل معرفی نماید. می بگوید که او از بیرون ما را نگاه می کند ولی به افکار ما دسترسی ندارد. یا می بگوید که او به تمام افکار و احساسات و آنچه در ذهن ماست آگاه است. قابلیت باور به این آخری را از بعد از هفت تا نه سالگی داریم و از لحظه باور این داستان ما حضور یک موجود ماورایی را در داخل ذهن خود احساس می کنیم. از اینجا به بعد یک نفر در ذهن ما حضور دارد. حال جا دارد به دنبال پاسخ دو پرسش باشیم. آیا شواهدی وجود دارد که نشان دهد ما واقعا میپذیریم ذهن دیگری در ذهن ما حضور دارد و هر لحظه از تفکرات ما آگاه می شود؟ اگر اینطور است تا کی این حضور برای ما دوام خواهد داشت؟ گرامیان همینجا در صفحه 18 فایل آوایی اول از کتاب فیزیولوژی ایمان رو به پایان میبرید تا درود دیگر بدرود.